عزیزان، آیا میدونید که روزه گرفتن یک انضباط روحانیه؟ آیا شما تا حالا روزه گرفتین؟ اگه گرفتین، آیا فکر می کنید که اطرافیان شما فهمیدن شما روزه هستین؟ سلام و خوشحالیم که در درس عملی دیگه ای هست تعالیم ایسا که به اون معزی سر کوه میگیم به ما پیوستین. امروز معلم ما به ما کمک خواهد کرد تعالیم ایسا رو در مورد روزه و اهمیت بخشش درک کنیم. واقعا روزه چی هست؟ چطور باید روزه بگیریم و چطور نباید روزه بگیریم؟ آیا شما بخشیده شدین؟ چطور باید دیگران رو ببخشید؟ چیزهای زیادی هست که امروز باید از مطاب باب شش آیات 14 تا 18 در مورد روزه و بخشش یاد بگیریم. حالا بیاید با هم به معلممون گوش کنیم. از این گذشته وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید آنان قیافه های خود را تغییر می دهند تا روز دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند اما تو وقتی روزه میگیری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو با خبر نشوند بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست تو را خواهد داد آیاتی که خوندیم آیات 16 تا 18 از متاباب 6 بود اونجا که عیسی ادامه میده و با ما در مورد انضباط روحانی صحبت میکنه که ما را قادر میکنه به درون نگاه کنیم در معزه سر کوه او ما را به چالش کشید به درون نگاه کنیم و با فیض خدا در اعماق قلب خودمون این رفتارهای زیبا رو پیدا کنیم که است از شاگردی که عیسی ترسیم میکنه ما به اون شخصیت مسیحی گفتیم. بحران مربوط به مسیحی شدن در زمینه این معزه برای ما به تصویر کشیده شده چنانکه استراتژی سر سرکو و زمینه ای که این موعظه در آن داده شده نیز همین بود. بعد خوشحبهال ها نمودار شخصیت مربوط به مسیحی شدن رو برای ما ترسیم میکنند. بقیه متا 5 مربوط به چالش زمانی است که به نوعی شخصیت مسیحی بر فرهنگ تأثیر میذاره. به عبارت دیگه وسیع ترین بخش م 5 کاربرد آن هست در خوشحبهال ها ایسا ما رو به چالش کشید که به درون نگاه کنیم و بعد در بقیه م 5 او ما را به چالش کشید که به اطراف نگاه کنیم زمانی که او گفتن این رو به پایان رسوند که ما باید بفهمیم کی به درون نگاه کنیم و وقتی به اطراف نگاه می کنیم چه اتفاقی میفته از اون به بعد آماده شدیم که به باب شش بریم در باب شش او گفت که اگر میخواهید چیزی بشید که قرار بشید وقتی به درون نگاه میکنید و به اطراف نگاه میکنید، فقط باید به بالا نگاه کنید. شما نمیتونید، اونطوری که من می خوام با برادرتون رابطه داشته باشید، با رقیبتون، با همسرتون، با همسایتون، با شخص شرید یا با دشمنتون، مگر اینکه به بالا نگاه کنید و فیض خدا رو دریافت کنید. و شما هرگز این رفتارها رو در قلبتون نخواهید داشت. مگر اینکه فیض خدا را داشته باشید پس ما آماده ی باب 6 میشیم اونجا که به ما میگه به بالا نگاه کنیم وقتی به بالا نگاه می اگر می خواهیم نگاه به بالا داشته باشیم و در آن نگاه به بالا بمونیم و اون نگاه به بالا رو توسعه بدیم باید انزبات های روحانی در جای خود قرار بگیرن اولین انضباط روحانی ایثار هست دومین انضباط روحانی که او در باب 6 تعلیم داد انضباط دعا بود در زمینه انضباط دعا او این تعلیم بزرگ را به شاگردان خودش درباره روش دعا داد در زمینه روش‌های دعا ما دعای شاگردان رو داریم که نه تنها یک دعا هست بلکه همونطور که دیدیم یک روش دعا نیست هست که شاید خلاصه ای برای تمامی دعاهای ما باشه حالا بسیاری از مردم درباره دعای شاگردان سوالاتی دارن میخوام قبل از اینکه به سومین انزباط روحانی بپردازیم که عیسی در متا 6 تعلیم میده که همون انضباط روزه است به یکی از اون سوالات اشاره کنم. خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم یا قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشید. در متا 6 12 به ما گفته شده که دعا کنیم، و بعد وقتی تعلیم دعا داده میشه عیسی این توضیح بعدی رو میده ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا عبدالاباد از آن توست آمین چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید مردم میگن به نظر میاد عیسی تعلیم میده که باید ببخشید تا بخشیده بشید این با بقیه الهیات عهد جدید به هیچ وجه همخوانی نداره چون تعلیم عهد جدید به وضوح میگه که مبنای بخشش ما مرگ ایسای مسیح بر روی صلیب هست وقتی ایسا بر روی صلیب میمرد فریاد زد تمام شد بنابراین ما به کار تمام شده مسیح بر صلیب اشاره می کنیم و البته دوست دارم اشاره کنم که این با تعالیم کتاب مقدس سازگار هست مخصوصاً با شاهکار الهیاتی مثل نامه پولس به رومیان که وقتی ایسای مسیح کار رهاسازی و نجات را خاتمه داد او هر کاری را که باید انجام میشد، به کمال رساند تا گناه بتونه بخشیده بشه امکان نداره بتونیم چیزی به کار خاتمه یافته ی ایسای مسیح اضافه کنیم سوالی که دوست داریم بپرسیم اینه آیا فکر می کنید کاری که او انجام داد کافی هست؟ یا فکر می شما باید کار او را تکمیل کنید آیا فکر می کنید لازم چیزی به کاری که او انجام داده اضافه کنیم؟ البته جواب واضح در کتاب مقدس اینه که شما نمیتونید هیچ چیزی به کار تمام شده ی مسیح اضافه کنید همونطور که کتاب ابرانیان میگه قربانی بیشتر از این برای گناه نمیتونه وجود داشته باشه در پرتو این حقیقت که او جان خودش را به عنوان عالیترین هدیه به خدا داد تا اینکه گناه بتونه بخشیده بشه شما نمیتونید هیچ چیزی هدیه کنید که بتونه به اون اضافه بشه خب پس چطور چنین تعلیمی رو میتونیم توضیح بدیم ما را ببخش چنانکه ما میبخشیم و بعد عیسی رو میبینید که اظهار میکنه اگر نبخشید شما نیز بخشیده نمیشید؟ من فکر میکنم جواب چیزی مثل این هست. در متا باب 18 عیسی تعلیم بزرگی درباره بخشش داده و به اهمیت بخشنده بودن ما اشاره کرده. متی 18 از آیه 21 شروع میشه که این مسئله عظیم بعد از سؤالی که پتروس پرسید مطرح میشه. آیه اینطور میگه: در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید: خداوندا اگر برادر من نسبت به من خطا کند تا چند بار باید او را ببخشم؟ من شنیدم که علمای دین میگویند هفت بار تا هفت بار ببخشم؟ ایسا در جواب او گفت نمیگویم هفت بار بلکه هفتاد مرتبه هفت بار. بعضی از محققین میگن چیزی که منظور ایسا بوده عملا هفتاد ضرب در هفت بود. بعضی ها حتی میگن که منظور او هفت به توان هفتاد بوده که البته میتونه عدد بی نهایت باشه. با دادن اون جواب به پتروس ایسا مسئله به جواب خود اضافه کرد. کلمه یه مثل از دو کلمه یونانی پارا و بالو تشکیل شده. کلمه یونانی بالو کلمه یه که برای پرد کردن استفاده میشه و کلمه پارا به معنی در کناره هست. پس مثل که در یونانی به آن پارابل میگویند داستانی بود که عیسی به کنار حقیقت میانداخت تا اون حقیقت رو به تصویر بکشه. حقیقت در جواب او به پتروس بود. او گفت شما هفت بار نمی بخشید بلکه هفتات هفت بار. حالا برای به تصویر کشیدن این جواب او این داستان رو به همراه اون در متا 18 تا 23 تا 35 مطرح کرده اون میگه چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد وقتی این کار را شروع کرد شخصی را نزد او آوردند که میلیون ها تومان به او بدهکار بود اما چون نمیتوانست آن را بپردازد اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند، تا بدهی خود را بپردازد آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت ای آقا به من مهلت بده و من تمام آن را تا دینار آخر به تو خواهم پرداخت دل ارباب به حال او سوخت به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرده و به او اجازه داد که برود اما او وقتی از آنجا رفت در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که حدود 100 تومان به او بدهکار بود او را گرفت و گلویش را فشرده گفت بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را میپردازم اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداختا بدهی خود را بپردازم خادمان دیگر که این ماجرا را دیدن بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. ارباب اون مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی من همه بدهی تو را به تو بخشیدم. آیا نمی همینطور که من دلم برای تو سوخت تو هم به هم کار خود ترهم میکردی؟ ارباب انقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید. تعلیم واضح این مسئل اینه که قرض هنگفتی به خاطر درخواست شخص مدیون که از طلبکار خواسته به او رحم کند بخشیده شده و بعد از بخشیده شدن این بدهی هنگفت این خادمی که بدهیش بخشیده شده با کسی مواجه میشه که بدهی ناچیزی به او داره و او این مرد رو تحت فشار قرار میده و اصرار میکنه که تمام بدهیش رو بپردازه وقتی اون شخص نمیتونه دینش رو ادا کنه او رو به زندان میندازه حالا کسی که بدهی هنگفت او رو بخشیده این داستان رو میشنوه اون خادم رو احضار میکنه و به او میگه رفیق تو پیغام رو نگرفتی من بدهی هنگفت تو رو بخشیدم اما تو حتی مقدار ناچیزی رو برای برادرت نمیبخشی تصمیم من عوض شد و دیگه میخوام تو رو به زندان بندازم این مثل داستانی هست که به همراه اون حقیقت گفته میشه اما کاربرد این هست در آخرین آیه از متا او میگه پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید. کاربرد واضح این هست. وقتی شما به مسیح می و وقتی خبر خوش انجیل رو می این بخشش اولیه رو دریافت می وقتی به اون باور می و نجات پیدا می کنید، مثل این هست که بدهی هنگفت شما بخشیده میشه و تمامی گناهانی که مرتکب شده بودید و گناهانی که بعدن مرتکب خواهید شد بخشیده میشه. حالا اگه شما واقعا باور دادید که بدهی هنگفت گناهان شما بخشیده شده؟ بعد اگر کسی گناهی بر علیه شما مرتکب میشه درست مانند اون بدهی کوچک اگر واقعا درک کنید چه بدهی هنگفتی داشتید و بخشیده شده آیا خود شما شخصی بخشنده نخواهید بود؟ جواب این تعلیم به نظر میرسه که اینه بله در واقع شما شخص خواهید بود. اون مثال میگه که شما اگر شخص بخشنده ای نباشید، در واقع درک نکرده اید که شما شخصی بخشیده شده هستید. اگر شما شخص بخشنده ای نیستید، احتمالاً باور نمی کنید که بخشیده شده اید. تنها از اون نظر هست که عیسی میگه ما باید دعا کنیم، های ما را ببخش. و من فکر می کنم به این دلیل که او از واژه قرض استفاده میکنه. چنان که ما قرضداران خود را می‌بخشیم. او به اون مسل فکر میکنه به قرض چند میلیون تومانی و بعد کسی که فقط مقدار کمی بدهکاره اگر قرض کلان من بخشیده شده پس من باید کسی رو که چنان مقدار اندکی به من بدهکاره ببخشم و این چیزیه که عیسی توضیح داده اگر شما کسانی رو که بر شما خطا کرده اند ببخشید پس در واقع خود شما نیز بخشیده شده ای. چون اون رو درک میکنید و به اون باور داری اما اگر شخص بخشنده‌ای نیستی یا قرضی رو که داشتید و بخشیده شده درک نمی کنید و یا واقعاً به اون باور ندارید ما باید ایمان داشته باشیم که بخشیده شده ایم. بخشندگی ما دقیقاً عملی هست که نشان بخشیده شدن ما هست اون دقیقاً به ایمان ما ارزش میده این واقعیتی که ما درک می کنیم و به اون باور داریم میگویند گویند مسیح قرضی رو پرداخت که بدهی خودش نبود چون ما قرضی داشتیم که شخصا قادر به پرداختش نبودیم این مسئله متا 18 اون رو به تصویر میکشه. شاید اون مسئل بتونه سوالی رو که قالبا درباره دعای شاگردان پرسیده میشه روشن کنه. حالا بیایید به سومین انزبات روحانی بپردازیم که ایسا اینجا در متا باب شش اشاره میکنه. انزبات روزه باز هم کلمه ریاکار به کار رفته. دوباره ایسا همونطور که در سه انزبات روحانی دیدیم مقایسه میکنه. پرسایی دررویان رهبران مذهبی که در رابطه با نشان دادن پارسایی نقش بازی می‌کردند و عیسی پارسایی اونها رو با پارسایی که شاگردان باید داشته باشند مقایسه می کنه که باید بالاتر از پارسایی ریاکارانه رهبران مذهبی باشه. باز هم اینجا این نظریه رو دارید که پارسایی رهبران مذهبی، کاتبین و فریسیان ریاکارانه و فقط نوع افقی پارسایی بود. وقتی اونها روزه می گرفتن این به خاطر خدا و در مقابل خدا نبود به خاطر مردم و در مقابل مردم بود به این منظور که وقتی روزه بودن پارس ها جلوه بکنند که مردم بتونند چهره بیحال اونها رو ببینن و گرسنگی اونها رو تشخیص بدن بعد وقتی مردم از اونها می آیا کسالتی دارید؟ اونها پاسخ میدادند نه، من روزم من معتقدم شما همون تعلیم رو اینجا دارید که در رابطه با انضباط روحانی ایثار و دعا داشتید اون باید به خاطر خدا باشه نه به خاطر انسان اون باید در مقابل خدا باشه نه در مقابل انسان مردم لازم نیست که بدونن شما روزه گرفتید و لازم نیست که بدونن شما هدیه میدید و یا اینکه دعا میکنید اینجا تعلیمی هست که اکثر ما به اون نگاه کردیم و رو راست بگم این متن مورد علاقه من از کتاب مقدس نیست اکثر ما اگر بتونیم تصاویر یکدیگر رو ببینیم با عکس هامون در مورد همدیگه قضاوت میکنیم اگر احتمالاً چیزی در مورد روزه نمیدونیم، اگر پزشکی قانونی اکثر ما رو معاینه کنه، ما رو به عنوان افرادی تشخیص میده که تغذیه خوبی داریم، چون اکثر ما ظاهرمون نشون میده که خوب تغذیه شدیم. این میتونه به این معنی باشه که ما خیلی با روزه سر نداریم. اینجا سوالی مطرح میشه. آیا روزه برای امروز هست؟ آیا روزه هنوز اهمیت داره؟ من فکر میکنم چون عیسی اون رو تعلیم داده، پس اهمیت داره. اگر همونطور که در باب پنج دیدیم تفاوت بین شریعت مکتوب و روح شریعت رو درک کنیم، اون موقع فکر میکنم به این درک خواهیم رسید که روزه هنوز برای شاگردان عیسی مسیح در این دوره اهمیت داره. شریعت مکتوب در رابطه با روزه چی هست؟ اون مثل فریسی هست که در معبد با اون باجگیر دعا میکرد، که تو رو شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و نیستم. و نه مثل این باجگیر. هر هفته دو مرتبه روزه میدارم و از آنچه چه پیدا میکنم ده یک میدهم فریسی از خدا تشکر میکرد که مثل همه اون مردم نیست او به افرادی مثل باجگیری که در گوشه ایستاده و مشغول دعا بود به دیده‌ی تحقیر نگاه میکنه فریسی در مورد این واقعیت فخر میکنه که هفته ای دو بار روزه میگیره این شریعت مکتوب هست. و باز هم باید بگیم که پارسایی افقی هست. برای دیده شدن توسط مردم، اما روح قانون روز چی هست؟ این جاییه که ما میبینیم، روزه هنوز برای امروز هست. روح شریعت، وقتی اون رو درک بکنیم، همیشه حیات میبخشه. منظور از روح شریعت، هدف از اون قانون هست. اصولی که شریعت تعلیم میده، چی هست؟ وقتی خدا شریعت رو میداد، چه چیزی در دلش بود؟ وقتی هدف خدا رو درک کردید، بعد اون رو در روزه به بگیرید. واقعاً مفهوم روزه چی هست من فکر می‌کنم جواب اون رو در تسنیه باب هشت در سه اول پیدا می‌کنی اون معزه عظیم موسا رو خطاب به بنی اسرائیل به خاطر بیارید که به اونها گفت به گذشته نگاه کنن و تمام راهی رو که خدا چهل سال اونها رو در بیابان هدایت کرد به خاطر بسپارن موسی به آنها میگه او شما را فروتن کرد و گرسنه گذاشت و بعد شما را با مننا تغذیه کرد که نه شما می و نه نیاکانتان تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید انسان نه به نان تنها زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده میشود. وقتی عیسی در بیابان وسوسه شد یادتون اون وسوسه چی بود؟ شیطان به او گفت به این سنگها بگو نان شوند و آیا جواب عیسی را به خاطر میارید؟ کتاب مقدس میفرماید انسان نه به نان تنها زیست می کند. بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می شود. این حقیقت روحانی بسیار مهمی هست که دقیقا میگه کلید حیات جسمانی نیست. مهمترین بخش از وجود انسان بخش جسمانی نیست، بلکه بخش روحانی او هست. همه ما از دو بخش ساخته شده ایم. ما هم جسمانی هستیم و هم روحانی. بخشی از ما هست که ملموس، قابل رویت و مادی هست شما میتونید اون رو ببینید، میتونید اون رو حس کنید، میتونید اون رو لمس کنید و بعد بخشی از ما هست که نمیتونید اون رو ببینید، لمس کنید و حسش کنید. اون همون بخش روحانی ما هست. وقتی ما میمیریم، معنیش اینه که این بخش واقعی ما، بخش روحانی ما از بدن خارج میشه. کتاب مقدس میگه بدن ما مثل یک خیمه هست. خیمه ای که روح در آن زندگی میکنه. دوم قرنتیان چهار میگه بدن یک ظرف از بین رفتنی هست. کتاب مقدس حقایق بیشتری رو عنوان میکنه که بخش حقیقی انسان انسان بیرونی نیست. اونطور که پولس در دوم قرنتیان چهار و پنج میگه بلکه بخش حقیقی بخش ابدی ما هست. بخش مهم ما بخش روحانی هست. این چیزی که پولس به اون انسان درونی میگه. انسان درونی، انسان روحانی بسیار مهمتر از انسان بیرونی یا انسان جسمانی هست. بنابراین چیزی که باقی میمونه انسان درونی هست. هر چیزی که بخش روحانی انسان رو تغذیه میکنه و پرورش میده بسیار مهمتر از چیزهایی که انسان بیرونی یا انسان جسمانی رو تغذیه میکنه. وقتی شما روزه می میگیرید ثابت میکنید که این چیزیه که با اون همیت میدید. این ارزشی هست که شما اعلام میکنید. وقتی روزه میگیرید دقیقاً میگید که بخش درونی انسان، بخش روحانی انسان بسیار مهمتر از بخش جسمانی یا انسان بیرونی هست. بنابراین برای بقای انسان درونی، کتاب مقدس میگه که کلام خدا بسیار مهمتر از خوردن نان هست. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ عیسی این سؤال رو در بخش دوم این باب مطرح میکنه که در درس بعدی اون رو خواهیم دید. زندگی شما چیه؟ بدن شما چیه؟ بخش روحانی شما چیه؟ شما در این چیزها واقعا به چی ارزش قائلید؟ آیا به بخش جسمانی یا به بخش روحانی اهمیت میدید؟ بنابراین آیا حفظ بدن جسمانی شما اهمیت داره یا بدن روحانی شما؟ وقتی به این چیزها فکر کنید و به عرضشهایی که اونها عرضه می کنند، تمرین کنید، اون وقت روح قانون روزه رو درک خواهید کرد. وقتی موسی به بالای کوه سینا رفت به مدت چهل شبانه روز روزه گرفت چیزی که با اون روزه گرفتنش می گفت این بود خدایا من کلامی از تو می خوام که انسان درونی منو و انسان درونی قوم تو رو که در پایین کوه هستند و تو مسئولیت اونها رو به من سپردی حفظ کنه من کلامی از تو می خوام که بخش روحانی رو تغذیه کنم بیشتر از آنچه که برای خوردن نیاز دارم آیا توی گرسنگی تون به خدا و به کلام خدا و چیزهای روحانی به اونجا رسیدید به نظر میرسه که این مفهوم روزه هست. بعضی از دکترها روزه رو به عنوان یک رژیم سلامتی خوب توصیه میکنند من معتقدم که چیزهای فوق العاده ای درباره ی روزه نوشته شده اگه شما تصمیم دارید روزه بگیرید باید واقعا بدونید دارید چیکار میکنید این خیلی اهمیت داره که مراقب چیزهایی باشید که شما قبل از روزه طولانی میخورید و بعد اگر دستگاه هاضمه شما به خواب میره خیلی مهمه که بدونید چطور دوباره اون رو به کار بندازید شما نمیتونید روزتون رو با یک غذای مفصل بشکنید اگر علاقمند به روزه گرفتن هستید واقعا علاقمندید پس تکالیفتون رو انجام بدید شروع کنید به تحقیق پزشکی در مورد حقایق مربوط به روزه اما معنی روحانی روزه چیه روح قانون روزه چیه به نظر میرسه این باشه بخش روحانی شما بسیار مهمتر از بخش جسمانی شماست. بخش روحانی شما بسیار مهمتر از بخش جسمانی شماست. با انکار قضاهای جسمانی به خودتون و به خدا نشون بدید که شما درک میکنید که بخش روحانی شما مهمتر از بخش جسمانی شما هست. به این ترتیب شما میتونید بیداری روحانیتون رو افزایش بدید. اما وقتی این کار رو میکنید، حساب ما یادآوری میکنه که این رو برای تظاهر انجام ندید به خاطر خداوند روزه بگیرید. نه برای روحانی جلوه کردن در برابر دیگران این چیزیه که عیسی اینجا میگه اگر روزه میگیرید بذارید این بین شما و خدا باشه نذارید کس دیگهی ای وارد این رابطه بشه اطمینان حاصل کنید که این عملی برای خدا در مقابل خدا و برای خدا باشه نه برای تمجید انسانها پس خواه بخشیدن به دیگران باشه یا دعا یا روزه، اون باید اصلی عمودی باشه، اون نباید اصلی افقی باشه. انزبات روحانی انزبات های عمودی هستند. انزبات روحانی برای خدا هست، نه برای مردم. ببینم، حالا که شما بخشیده شدین، چطور دیگران رو می‌بخشین. بدون درک بخشش خدا و بدون کمک خدا، بخشیدن دیگران امکان پذیر نیست. در سر تا سر موضعی سر کو ایسا به ما یاد میده که مفهوم واقعی شاگرد بودن چیه؟ دعا میکنیم که دانشکدی کچک کتاب مقدس به شما کمک کنه تا خدا رو بهتر بشناسید و اون رو بهتر خدمت کنید و وقتی امروز او رو پیروی میکنید او شما رو با آرامش و شادی و دلگرمی خودش پر کنه تا شاگرد وفاداری باشین که او از شما دعوت کرده که باشین. تا برنامه بعدی اینه که شما بیشتر برای بخشیدن متعهد باشید و اینضباط روحانی روزه رو در زندگیتون به کار بگیرین ضمن که خدا رو در اولویت قرار میدین.